عملیه که این مخالفت با خطاب مرسده اجمالی بین خطابه مثل اینکه علم به نجاست مایهی باشه یا حرومت مرهی یا علم به حجوم دعا درویت نه یا حجوم سراد اندازه کن نبی سرگاهات حالا مخاومت همه یه قطعیه در موارد خطاب مردده موجه باشه بین دو خطاب اختلافی برد چهار بول. قول اول جواز نفله مخادنگ مردده بین خم و این نبیه متعلق نفت در ایچ کدام بس کتابات نیست تا اینجه بهتقا حرام باشید اینه ما دباییت نظرین بیاد قاعد بشون اینجه مردد بین خم با ایشنبیه شما حرامه بلکه دو تا خطاب داریم که معلوم نیست که دو بشتادش شده و یکی متعلق خم بریم متعلق ایشنبیه اشتنه بند خم یا اشتنه بند ایشنبیه اینها رو داریم که به خصوص ثابت نشده مردد بین این دوتا خطاب نداره و همجین مردد بینم دعای در حالت همه خلال نبیه در و خطاب منم خطابات شریکه تا یه مرد ها و همجین مردد بین دعا باست دعای در عویت یا وجوب زلاطه ذکر نبی. در این قائل به جوازن مطلقا بنابر این قول و دلیلی که مییارند غیر از اون چیزی که ذکر شد اینه که اطاعت و محضیت عبارت است از موافقت خطابات تفسیحیه معلومیه و مخالفت خطابات تفسیریه لذا خطابات اجمالیه موافقت و مخالفت نداره اطاعت و مصیت هم نداره باید دوم شاید مختار خود مصنب جزمن عدم جواز مطلق، <تصفح> یعنی مخالفت عملیه جایز نیست مطلب بخواد مخالفت اشاره چه در خطابات تمسیلیه و چه در خطابات اجمالیه قبیهتون عقلن مصحبتون لزم معلی ها قدای و ظرفی ها این رو به ها اینم دلیل قول دوم دو که مختار مسمه قول سوم بین شباهات موضوعیه و شباهات حکمی که در شباهات موضوعی قایل به جواز بشیم و در شباهات حکمی قایل به احتیاط بشیم و دلیل انتیاد در شباهات حکمی و همچنین برای در شباهات موضوعیه اینه که در مخالفت هر به شباهات موضوعی فوق هسته مخالفت در شباهات موضوعی از حد هسته به خلاف که مخالفت در اونها جایز نیست و قبلا هم اینو تقریب کرد در مسئله اجماع مرکب اینکه در شباهات خوبی ما نمیتونیم استکار کنیم ولی در شبهات موضوعی میتونه مواجه برامت باشه و که اندر وجه ما در اجماع مرکم که محزنش همینه به ایک از موانی عمله سال شهر همسایی حساب میشه به اندر اصول به موضوعات تخرج و مجاری ها موضوعات عدلت احکام و تکش بخلاف اصول در شباهات حکمی فعنده ها معارضتون و منافیتون لنفس حکم واقعی معلوم بدشن یعنی اصول موضوعی در شباهات موضوعی جاری میشه ولی اصول در حکمیه در شباهات حکمی جاری نمیشه به خاطر اصول موضوعی در شباهات موضوعی باعث میشه که این موضوع از سر در احکام خارج میشه اضافه بشه و بایده به حکومت میشه به خلاف رسول حکمیه در شبهات حکمیه جاری میشن آنها در اطراف شبهات مغموم به مالی جاری میشه و که منافذ داره با نفس حکم واقعی که این مجمالی گرفته وقت عرب سر زقف و به جمعه. و هنم مردی از اخراج موضوعی دارد به در مطردات برازالک این حرفی که الان ذکر کرد مندمنه هنم اصول به موضوع ها تقرد و مجاری ها و موضوع ها تردنده در خود مصنفه امتحانه به این بیانه که حرفی از حکومت نیام قائل به حکومت حسول موضوعی در شباه به موضوعی هست این حرف و این طور اینطور کرد به در اصلش همه من, من خودشه فرموده مرجع اخراج موضوعی به حکومت اگر کسی قائل به حکومت بشه قبولی این حرف و یگر قائل به حکومت نباشه این حرفونه میتازی و الا مننده بسول به موضوع تخرج و مجاری ها موضوع تضاده دست این حرف خود, خود این اخراج موضوعی اگه به معنی حکومت باشه قابل قبولونه برای ما سنی نباشه قابل قبول نیست لذا به این تعبیر فرموده این ضعیفه و قد عرب طرز اعفر که از تعبیر این تعبیر ضعیفه یعنی معنا ضعیف باشه تعبیر با اینطوری باشه و انما جز ارشاد موضوعی اله رفع علم حکم مرتبط علاوه اگر عنوان الجاری جاری فی موضوع فی حیلته منافی عمل نفس دلیل واقعی منافی اله لانه حاکم علیه لا معرزم لا فرق که بین دو تعبیر فرقه پیدا مبنا یک معناست اصول موضوعیه در جواب موضوعیه جاری میشه و ترخیص میکنه ولی اصول موضوعیه در جواب موضوعیه جاری نمیشه تا ترخیص کنه اگه به تعبیر اولی باشه اشکال داره به تعبیر حکومت باشه مانع نداره پس فرد هم بین قبل اینم تعبیر این فرد تعبیر رو میگه باید ملانزه داره اگه قاعد به حکومت باشه مانع نداره ولی اگه کسی بدون حکومت قاعد بشی به این حصول در شباز موضوعی جاری میشه اون حکومان این حضر این قول سلپون قول چهارون الفار بین که اون حکم مشتبه بی موضوعین واحده به نو مثل وجوب دعا در رویت یا وجوب صلات این در ذکر نبی به هر دو وجوب و بین اشتلافهی بی که وجوب شید و حرمت شیء ناخد اگر علم اجمالی طرفینش اینش دوتا دو تا باشه یا یکی از طرف باش باشه موجوب باشه دیگری حرمت باشه ما به این دوتا قائل به فرق میشیم قایه به نوعه یا واحده به نوعه اگر همه اطراف یک حکم داشته باشه و اختلاف فقط در ضده اطراف باشه میتونیم قائل به احتیاط بشیم ولی اگر اختلاف به نوعه یکی وجوب یکی حرمت هیچ یک کدام از این ها ثابت. الفرق و تفصیل بین مواردی که حکم مشتبه واحد به نوم باشه مثل و, و بین مواردی اختلافیه حالا دلیل این قوله به تفصیل چیه؟ ولوش حکمی زاده فرموده در خطابات به واجبان شرعی به اصحا به حکم خطاب واحد به فعلی کن و ترکل بعض محصیت همه رو قال مولا افعال کذا و کذا و کذا تا خن فه اینهو به منزلت افعال ها جمعی هم فلا بین ترکی واحد من ها معینن او ترکی من ها قیل معینن اندهو بخاطر اینکه تمام واجبات شبیه همش برگشتش که یکی ولی اگر بین موجوب و حرمت مردد باشه نه ما نویزم قائل به ایدیات بشه از در مواردی که وجود به هر شیعه نه قائل به ایدیا و نهگر ام مرتضی به این باشه نمیشه قائل به ایدیات بشه نه ام فی وجود الموافق تلقیه به ایدیا به کل واحدهای من المثمرین کلام آخه مبنی آلا آن موجات را علم علمی به حکم الوهی فلبن یک تذی البراهد یقینیان هو اول یوخته به آهاد ما حذران علی مخالفت هي بنفسها به نفسها مضمومت می‌داند وگرہ بین یادت لم اندهم میان لام یل حزم و میان لام یزدم یل و علی وجوه دالیهینی در مواضع شتابی مشمول نباشند در وجود و موافقه در ارث هم یه مبنای دیگه اختلافیه ول اقوام من, من هاذه الوجوه الاربعه یعنی مخالفت عملیه با خطاب مرسد اجمالی قائل به عدم جواز مشروطا ثم اول این جواز ثم بول و اصلا نداره واحده به نو باشه یا مختلف به نو باشه حاضر کلو اشتباه نوکر منحیص و فعل مکلفه به که اون واجب ما مردده بین اطرافیه یا مردده بین موجود و حرمته یعنی خودو شیلی که ما بهش مکلف شد ولی اگر اشتباه از جهات دیگه باشه اول مواحسه این فرمود که اشتباه دقا به این کسی را لطرافه از چندین جهت میشه درش اختلاف باشه و اختلاف هم هست و هر کنون حکم خودش رو داره یکی از اون مواله اینه که و عمل کلام اشتباهی منحیس و شخص مکل لفت دالی کرده کی مکل بین به این حکمه ما یه حدث اجمالی به این در این بین داریم حالا کی مکل لفت به قصده نمیدونی طبیع دارای انبالیه ولی کی مکلف به اخراج خمسه ولیش یا حاکم شهر یا خودش یا انبالی که زوجه داره کی مکلف به اخراج خمسه خودش یا شوهرش ما مکلف رو نمیدونیم کیه بلیه حکم مکنلقه به رو می قطعا هست ولی شخص مکلف رو نمیدونیم و 말미암아 اشتباه این منهایس و شخص مکلف به که او ذات مکلفی که مکلف به این حکم کیه ما نمیدونیم مثلا امر به معروف رو همه میدونیم واجبه اون شخصی که مکلف به این تنفیذه کیه منم یا دیگری یا رفیقم یا نیروی انتظامی یا پلیس کیه کی مکلف نمی‌دونه شخص مکلف برای ما اختلافی بنابراین مثال‌های خیلی زیادی داره مثال های خیلی زیاد و نمیدونی مکلف به این کی باید باشه بله خب نظر مشهور و مسنف. مسنف اینه که شبهه مستاغی هم و شبهه موضوعی است اینا ها قالبه نیستن چون شبهه ها تو به این هم که تقسیم میشه به دو قسم شبهه ها یا, یا موضوعی هست سوم سیگون برایل نیستن تمام با مقصومیه رو برمیگردن برمیگردنن به حکمیه مستاقیه رو به موضوعی نقای به فرمیدن ازاقی از خیلی ها در مقام افتاق خاطر همین الان ما در ذات مکلف اختلاف دیم یقینم این باید از چیزهایی باشه که احکام ذاتی باشه چون شکل ما در ذات مکنف حالی به خود حکم نداریم خود مسلم و محلوم یعنی کدوم ذاتین رو داره و مکندبه به این حکمه اون اختلافیه ازا یقینا این بحث که میخوایم شروع کنیم مرتبط به احکام ذاتیه و حدود و سغورش باید مشخص بشه یک حدثی فیل بین هست ما نمیدونیم این حدث مال امام باید باشه یا معمومش باشه کدومش و کلام اشتباهی من حیث و شخص مکنده به زالی کلبون فقط عرفت انهو علا قسمی <تصفيق> قائله مرنش همین دیگه قول دومه دومه دومه عدم جواز دیگه نه ببینیشون قولش ترفیقیه قایل به عدم جواز میشه در کدومش یقینه شباعت حکمیت داره میگیدیم نه چون شباعت موضوعی ها بکت شباعت موضوعی قایل به حکمته این تصامح در تعبیر خود حاشیه چی مدل ماله... بر شیخ صدرا بدی اونم که تصامح در تعبیله. شون مبناش ترفیقیه یعنی یک تفسیری بین شقات حکمیه و موضوعیه داره یکی هم در شقات حکمیه قائل میشه به عدم جواز متکهو ولی به این بیان چون معلومه دیگه خیلی نمیشه یاد گرفتم پس از این جهد اشتباه نیست ببین یکی اینکه که کلمات مصنفشی میگه دوم میگه مبناش چیه مبنای مصنفش واضحه مبنای مصنف در شباهات موضوعی قائل بینه که جاری میشه چون قائل به حکومت اصول موضوعی هست در شباهات حکمی قائل, قائل به احتیاط این مبانش محلومه ولی الان تعبیاتش فرق میکنه الان دوره اول رساید که ایشون خودش تدریس میکرده بحرال فواید داره و غالبا قال... در قلائد مینویسه که اینو در دوره قبل اینطور تفسیر کرد دوره دوم داره اینطور تفسیر میکنه خود مصنف و مصنف بود اعباراتشم مصنفه بگیم نظری چی بوده ولی موانش از بیرون معلومه خودش ایخ چیه الان نظریشون در مقام تنفیقیه دیگه یعنی یک تفسیلی بین شبهات موضوعی و حکمیه داره یمینا یه خیلی جما این تفسیر رو داره با طبق همون اومده نسبت به مخالفت عملیه در خطاب مندد اجمالی که مرتبط به شبهات و است از قایل به عدم جواز میشه یمینا حلال مبناس دیگه شبهی نداره داره رساله شیخ همان هست دیگه نه فتحاش معلومه رساله ایشون تعدیقه سید یزدی رو داره میرزای شیرازی رو داره چاپ شده از اصلا کنگره چاپ کرده خیلی هم کتاب بود و خوب حالا بحث ما خیلی به این جهاز کاش نداریم تعبیلاتش واضح موانیش معلومه ایشون در خطاب مخالفت عملیه نسبت به خطاب مردت اجمالی مرتبطه به شباهات حکمیه میشه قایل به عدم جواز میشه خفت بنابر مبنای خودش درسته یه تفسیر بین شباه موضوعی و حکمیه هم داره اونم من حالا این میگه همشون نسبت به حکمه ولی اگر اشتباه نسبت به ذات مکلف باشه ما مکندف رو نمیدونیم الان ما نسبت به بیهجابی ما نمیدونیم ما مکندفیم یا دیگری مکندر این همه بیهجابیه ما خیلی اینا رو راحت گرفتیم ارتباط های زن و مرد ها. تو بانک ها توی تلویزیون همه جا عادی شده دیگه قومی نداره کسی بخواد با نام حرف نزنه میگن امونه این خونس هاست خونس های مشکلی خیلی داشت ما نمیدونه مکلف کلب هستیم یا نیستیم یا در خیابون یا در خیلی از جهان این بعض دخترها زنها اینا یعنی اسلامیه یا ما اسلام رو نفهمیدیم یا اینا انحراف دارن ما واقعا نمیدونیم مکلفیم به از منکر یا نیستیم و خیلی هم میگنن نهی از منکر بکنیم درست نیست یا نوزید قد میشه یا عمر توتون میشه در نفس بلاقه داره در حکمت 374 گنده لا یم من عمره لا یم وصان من زنده زنگ سنات نمی‌دونیش مگر یاد بگیرم کسی روزی منو برمیخونه یا بیا با من برخورد کنه برخورد نشده اینطوری شده طول فیلم ها چون نوع فیلم ها مثلا دهه محرم نشون میده یک عروسی یک اشفاده توی میاره میگون چنان که معمعش چرا باید با همه سنین هم نگاه میکنم به این از پنج ساله نگاه میکنه تا فیلمر به سال این مال همه سنینه هم. خب ما نمیدونیم مکلف بین هستیم یا نیستیم بعد که مثلا تو خونه تلویزیون نداشته باشیم خب فردا تو جامعه بزرچه گرفتار میشه ما نمیدونیم که هستش کنیم گرفتار و این زندگی لذا خیلی از موارد ما ذات نمیدونیم. ما نسبت به وام های بانکی نمیدونیم بانک نباید این کارای حرام انجام بده یا من نباید بگیرم صندوق های قرض که میگن بیست دلار toman بذار تا شرط گرفتن وام باشه ما نمیدونیم ما مکلف به اجتنابیم یا اونا مکلف به اجتنابن بابا نمیدونیم برای چی 20 دلار toman میگیرن چرا حرامش کنن تو میخوای وام بدی 20 تومن نگیر با شرط دیگه با شرط یا ما نفهمیدیم یا این اشتباه بی از چیه؟ نه بی سه زادت اینجا میشه شما دیگه صلاحیت داشته باشیه. تا که وام بگیره خوب حرام میکنن روای قرضی غیر از اینه نمیدونه مکملده هستیم نیستیم ذات مکملده رو تشخص نمیدیم لذار این مرتبط به احکام ذاتیه میشه که مجموعا سه قسم پیدا میکنه این خیلی دقیق از برس های و گفتم تمام فقه فقها تا مدار ذهنیت یعنی آقوی چرا اینطور پتغامی میده به خاطر ذهنیت هیچ کاری به مبانی و اینها نداره به ادله نداره اون ذهنیت ادله رو یا قبول میکنه یا ردش میکنه مهم ذهنیت هست. ذهنیت شما چی میشه شما قائل به سال خمسی میشه یا, یا نمیشه سال خمسی باید باشه یا نباشه سال خمسی باید داره یا نداره زمان می بوده سال خمسی قرار بدیم از اول محرم تا اول محرم بعد خوب اینا مطرح نمیشه ما نمیدونیم ما حجیت علمو میم مطرح با چیت زنون معتبره رو مطرح میکنیم ولی آیا این سال خمسی حجیت داره از نظر شرعی یا نداره نمیدونیم پس خیلی از بحثا نیاز به ذهنیت داره ذهنیت پیدا بشه طلبه تحقیق کنه سال خمسی باید باشه یا نباشه سال خمسی بر خلاف قاعده است یعنی علاق قاعده هر درامت خودش سال خمسی قهری خودش رو داره دیگه روزی که حقوق به حساب شما میدن یک سال خمسیشون میخوره کنه قهریه و نمیتونم در اون مور قهریه اعتبار کنم بیان میگم از اول رمضان مثلا سال خمسی منقش لذا اگر قاعده به حجیتش بشن در خلاف قاعده است وقتی خلاف قاعده باشه احکام خلاف قا و خیلی از چیزهای دیگه حالا نه رو با تأمل آقایم پیش بریم و اما کلام اشتباهی منهه است و شخص مطلب در بزاره کرد فقط عرفتن نهو علاق اسمی یک بحثش مرتبط به خونساست خونسا احتامی داری یا نداره خونسا با الان زیاد هم شده ماها خیال میکنه خونسای نیست، خونسای تکریفی نه خونسای اجتماعی انسان های بیخواسیت تدیاد داریم ولی یه خونسای تکیفی خونسایی که از نظر فقی خونساست نه اینکه فاقد آلت این باشه بلکه واجد آلت اینه میگن بگن خونسای مشکل فقی و یکیشم در رابطه با اینه که یک حکم مسلمی هست مکمل به بین حکم رو ما تشخیص نمیگیم مثل جنابت دائره بین دو شخص این جنابات مال زن بود مال مرد بوده مال خودش بود یا مال دیگری بوده مال امام جماعتی یا مال خودشه ولی اجازه نمید علاق اسمین یک و تارت هم فلحکم ثابته لی موضوع واقعی مردد بین شخص که احکام جنابت الان جنابت یه موضوع واقعیه ولی مردد مین دو شخص متعلقت به جنوب مردد بینواجد علمانیه حالا ما رمایات داریم یجب القص على کل جنوب یا الجنوب یجب علیه القص کدوم تعبیره و تعبیرات هم داره و کدوم تعبیر وارد شده هم لسان عدله مهمه باید بدونیم چون در تعبیرات تقریب این نظمت ها مثال میزنم اینکه یز برگوز علال کل جنوبه خب این در روایت نایمده چرا تعبیر عوض میکنم وقتی تعبیر عوض کنیم بکنیم حکم میشه این تعبیر نیست این الان یک عموم استیار تعبیر لسان عدله این نیست پس مهم که ما لسان عدله رو بگیم اونا چی میگن اون شبیه این معناست یجب برگوز علال جنوبه نه این که کل جنومه بین دو تعبیر خرقه ازا یکی ملاحظه انسان لسان عدله یکی هم این که تفنیم در این که منطقه استظهارش چیه ما از این باید چی بفهمیم از نظر فقی ما باید چی بفهمیم این؟ و چطوری بفهمیم این مسئله دوم و سقروی و فقیه که این روایت که شده ما از این روایت باید, باید چی بفهمیم او ما خیلی فهم میکنه تمام اختلافات برگشتش به فهم از روایات ما از روایات چی میفهمیم با هر که پیدا میشه برا ماها با اون میفهمیم تا آخرش هم من میفهمیم. اگر اون ذهنیت که عوض بشه یا نباشه ولی ولیگه ثابت باشه یک ذهنیتی استحسان نظریات فکری خیلی آسان میشه یک اوتارتن فلحکم ثابت به موضوع واقعی مثل حدث که بین دو شخص مثل جنابت متعلق به جنوبی که مردده بین دو شخص و یک اوت فلحکم ثابت شخص مثلا قز بسر از چیزهای حرام و نامحرم من جهت ترددهی بین این موضوع این که حکم خنثا ال در بین زن و این خنثا ممکن به احکام مرد یا ممکن به بر احکام زن حالا بعضی از چیزها از احکام عمومی حساب میشه مثل حرمت نگاه به نام محرم برای شنبی برای شنبیه خب اون برای خنثا ثابت ولی احکام اختصاصی زن خنثا میتونه با مرد اندواش کنه یا نه از من باید زن ازدباش کنه درون بشه و افروض اینی که خونسای مشکل فقیه نه خونسای منصور و خونسای پزشکی. فقیه با جده و قابل تشخیص هم نیست و هر دو حالت هم درش قیلیت داره اینو چی بگیم حالا به این نه بین این نهره که الان هست ولو خونسا هست و احکامش باید بدونیم ولی میشه این مثال رو تخییر بدیم مثال رو تخییر بدیم به مواردی که استعمالیه الان آشپزخونه های مسازیه جز یا جز مسجد نیست این جزء همین موارده چه از قبل آشپزخونه بوده چه بعد آشپزخونه بشه و اماکینی که قبولا مسجد من از مسجدیت خارج شده ولی ممر عابر فیادم نیست خراب شد بهش نرسیدن خراب شد الان یه زمین خالیه او که مسجد رو داره یا نداره اونم هم از همین مثل و خیلی از مثال دیگه که قصد اینه که یه دهتا مثال بزنیم از مثال که ملحبه به ولی واقعیت داره انا خونسا خیلی واقعیت نداره امبر کلام فیل اول یه این نسبت به که نوبتی که منزده بین دو شخصه و اینها رو اینطوری داریم میخونیم باید یه قواهدی استحسان بشه خواهد ترجمه نشه از اینجا بشه. یه ذهنیت های پیدا بشه برای آقایون که مبانیش و مصطلبش بر همین بعد اگه اینها ترجمه بکنیم بریم به چیزی به ذهن ما اضافه نشه و معلومی از معلومات فقیر به معلومات ما اضافه نشه فایده نداره تعبیرات اینها خیلی دقیقه منتها این تعبیرات رو فن نشن کردن الان این تعبیر خودمس هم نفتاره نسبت جنابت مرتده بین دو شخص و مدفع محسره و انمجر و در طرف دوده تکیف بین شخصه لا یوجب و علا اهده ما شیدن بر هیچ کدام چیزی ثابت نیست از این شما چی می فهمید؟ مرتد بین دو نفره بر هیچ کدام چیزی ثابت نیست خب پس چرا میگن یکی به دیگری نمیتونه اختیار کنه مگه شما نمیگید لا ولا احده منشه یه پس چرا در مقابل فتوای اندامه در کتابهاش که قائل به جواز اختیار نیستن و میگن چرا فتوا داده خود این هم دارم میگن در تحبیرات دیگه ای هم که هست من از کتاب های دیگه نوشتم که قایل به اینکه در موارد علم اجمالی لا یتند و علم جامعه در این کار نیست و از, در از خود عبارات بقه ها که در این مدار چی داریم؟ نه؟ ولی جنابت هست؟ اون جنابت نمیگم اون جنابت شرعیه. شرعیه صاحب نمیشه. جنابت شرعی ببین جنابت وقتی جنابت که متقوم به ذیق باشه. ولی یک مفهوم جنابت موقت از, از جنب جنبت مفهومه. دیگه تفسیری مالکیه خب جنوبی در نیست. تا منم مندی که اصلا وقتی دعوا سر همین میشن یعنی این که الان این وقت می که این معلومه که کی جنوبه؟ جنوب صد جنوب نیست برای این که و برای اینکه قص خوب بنابراین جنابت فقهی نیست ولی یه حادثه فقهی مفهوم صرف ذاتی نداره جنابت غیر متقوم به ذات مکلف جنابت نیست ذات مهمه وقتی ذاتی جناب، الان این دیوار جانبه نه مثلا میگنه یعنی احل اینجا وارد نشده یا این جنابت مال ملاحقه بوده یا مال اجنه بوده یا مال دیوار بوده دیگه. کسی وارد نشده ما میتونم حسن به جنابت کی بکنم جنابت <تصفيق> همونده چه اصلافش تو نفر انسان باشه چه دیوار و فرشته و بگرم جن باشه نفر نداره به این ذات آخه مهمه مهمه که این اگر هر با این خصوصیات معتبر درد از این شخص ساده شده باشه جنابت هست و ایلا نیست ذات باید معلوم باشه این حول متقبل به ذات خود اینام در میکنن و میگن و سید سیلیزی و تمام معلقین بر اوره همینه که قسل واجب نیست جماعت هم نرد علامه مخالفه و ده ها نفر دیگه مخالف هم نه مشهور الان میگن نه در جماعت نمیشه بدخواب چرا نظر شیخ بگیریم نظر اونها رو بگیریم الان یه اختلافی هست ما نمیخواهیم بگیم حق با کدومشه اختلاف هست از مسلمات نیست اینا نفتی قسل میکنن اونام نفی جماعت میکنن چه اشعالی داره؟ این طوری که برای ما گفتن این واقعیت نداره حالا ما اومدیم و این جنابت رو این طوری حلش کرده اونه احتیاط کنید نماز اینطوری این طوری نکنید امام جماعت به کنه بیاد نماز مردم خراب نه خب این حلش کردی نسبت به ورس چه نسبت به هزاران مسئله دیگه چی نگیه و قصد که نیست جزای قوائدیه ما این رو به یه طوری بکنیم که مشکلات عدیده فقهی رو حلشون مسئله یکی نیست در خیلی از موارد ذات مهم اگه ذات مهم نباشه خب فرض میکنه حکمش عوض میشه ولی اگه ذات مهم باشه و که کردن تو ذهنم میخوایم بسرح کنم معلوم باشه و تقریب بشه اون نظر یک تصویر به نجوان و ذات این هم خودشون هم دارم میگنه مجموعی فقط جامعه رو معلوم کرده و و بیشتر از جامعه نمیتونه و رامون از جز باشه بنابرای شب و حاط نستاقی خارجی میشن از این جواب که مشروعی مطال از این تصویر داریم بگیم زمان کنیم جنبون نم یعنی جواب كده یعنی نداره در نفر که هم به هم خوب اون اول دعوا اون اولو دعوا عین او اول دعوا آیا تکلیف ایجاد میکنه جنابت سید به ذات مانعیت داره در جماعت این اول کلام نه بحث همین دیگه و یا خودش جنوبی ها امامش بیا میاد نمیشه دیگه. شخص جنو به معلوم نیست. معلوم نیست پس چیکو نمیشه؟ یه جواب دیگه ای هر جوابام نوشته دادن قبلا هر از الان میکنه. ولی با تغریف بشه بسه. ضمن به خاطر اینکه استفهام خود شخص ما الان زیاد دار استفهام میگن که مثلا جناولت بینش خودم فلبه فلبین نداره نه مالی نه مالونه خب یه خرفان حتما مال یک یکی دو نه باید مشخص باشه باید مشخص بشه جنابت حدثی. هست طبق روایات که متقدم به شروطیه اون شرط در مواد تعرض نیست بلکه یه دیگه ما جنابت و نجاست مش نباشیم نیست <تصفيق> که نهی ظاهریه داره شاید اما به دلیل ادله بله این حرف خیلی خوبیه خیلی خوب که هم اگه باشه تشریعا نیست شارع جنابت شرعیت و متقرب لظا میده میگن که حالا خیلی اگه به این مسئله رو اینطوری حلش کنیم تعمیه حساب میشه یعنی ما ذهنها تأمیه ذهنها رو می‌بندیم دیگه با فکر نکنیدش ولی با ده ها مسئله دیگه میمونه چیزهایی که متقبل به ذاته اونا رو ما چطوری هم کنیم از هیچ تفسیری که بین عنوان و ذات پیش نمیاد. ما همیشه میرم دنبال صدق و عرفی و چیزای دیگه رو راحت. هست از یه انصداد درست راست از چرا اعتنال نشد علامه و متاخرینش تا دهها ها فقیر زبرده است اونا قاعدا میگه در جماعت اشکال نداره اختلاع حضر ما به دیگری معنی نداره با اینکه حدثه خوض نیست بگیم عملش آسونه، نه حدثه جزء موانع واقعی نماس سال میشه مرزالی میگن اشکال نداره و فتوه داریم یه فتوه نهایت تخدیقه و این اختلاف کاشف از چیه کاشف از اینه که مطلب وضوح لازمش رو نداره. نیاز به تحقیق نداره. یعنی اگه شرط واقعی واقعیه. وقتی واقعیه. اگه شرط واقعیه، برای و کناره. نه، ببین، قاعده ای دارم خود مشهور. موانه واقعی فقط با قلوم تفسیریه هراز میشه اونم دارن هم اونه چیزی ما از اونی که علم علمه دونستان دونستانه ما قضیفی این داریم معانه وجود داریم <تصح> چشون است که ما دیگه این داریم این علم دیگه موسادله دارم این معانه حالا نیاز به تعمال داره مثال های هست اینو که از یکه قائل به احتیاط بشه و بگه احتیاطا یکی به دیگری اختیار نکنه یا شخص سالسی به هر دو در دو نماز اختیار نکنه اینم اگه احتیاطا حلش کردیم بقیه مسائل میمونه اونان رو به چی بگیم؟ از این جهت خیلی مهمه ازد ابرت و فلعتاعت و معصیه به تعمل و بالخطاب بل داخل خاص مکلف متشخص خارجی مکلف خاص خصوصیت داره ذات شبهه ما شبهه موضوعیه و مفهومیه و حکمیه شبهه مصداقیه هست تا مصداق مشخص نشه جناب مشخص ما موضوعش موضوعشو میدونیم موضوع قصد جنابه ولی مصداقش باید قصد کنه نه موضوعش موضوعی ماهیت ذهنیه مصداقه که باید برگوست کنه هر و که باید برگوست کنه اون نمیدونه از الابرت و پل اطاعت و المعصیته به تعلق الخطابه به مکلف متشخص خاص خارجی متعین جنوب المردد بین شخصه قیل مکلف برگوست تکلیف به قصد نداره با تکلیف به قصد نداره از اون برای به اون یکی اقتدا نکنه چرا؟ بگیم خودت نمیگی تکلیف به قصد نداره میگنم سی هفت نفسهی نداره بلکه جمع بشن داره مورد ابتلا میشه اونم ایرادهای خودش رو داره اونم میگیم ایرادهای خودش رو داره شخص که مکلطه به قصد نیست قصد یه تکلیف ارتباطی به جماعت و انفراد نداره بگی منفردن وست نداره ولی که بخواد باید جمع بشه با یه شخص دیگه در جماعت این حتما باید برن یکشون وست کنه. یا ثابت نمیشه و این در منشاره انهو یج بلغس قلاق قل بل جنو بگی میگه اگه ولو وارد شده باشه و با این نکنم من هما شاکون دیتوت جوه ها خطاب هر دو شک دارن این خطاب قص مال منه این میگه مال من نیست براعت جاری می کنه براعت جاری می کنه اون میگه مال من نیست برای جاری میکنه خب هیچ هم قص نمی کنه. ولی میان ما این نماز رو این میخواد اقضار کنه به دیگری نمیتونن فق یک به واحد من شخصینی یکون جنوبن بمجرد حاضر خطاب غیر متوجه الیه تفسیلا نعم لتر تفرع به احد ما علم به توجه خطاب در دخل اشتباه متعلق تکیف همون به اقسامه ندیده بله شما چیمون در واقع اشکال اصلی شما به در دیگه که شما بگید یا دو طرف رو دو طرف رو بگید که نمیشه این هم اینجا بگید که غصبت نه این اصطراب در نظریه است در این اشکال این مبنا رو قبول نداریم مبنای تفصیل بین ذات و عنوان رو قبول نداریم نه شما در مقابل میگه مثلا ذات و در دریافت بحث اینه که ما اینجا اگر که قصد نمیخواد اونجا میگید میتونه به هم افضار میکنه اگر اونجا بگید به هم کنه اینجا میکنن. بله اینا جواب میدن دیگه میگن وقتی قصد نمیخواد چون بی‌نقص در بدن میگی ولی وقتی به همدیگی بخوان اختلاع کنن نه اون, فرق. اون محل اطلاع میشه خب اون جوابی که به محل ابتلاع باید بدیم بعد محل ابتلاع بودن در احکام انوانیه هست ما الان در ذات الان شک داریم این الان ذاتی یا غیر ذاتیه اینو مشکل مشخص نکردن جنابت متقومه به ذات متشخص خارجی هست یا نیست مشخص نشده الان نفقه مال ذات زنه یا زنی که مطیع باشه نمیدونیم خمس مال انوان منفعته یا مال ذاته به خب اگه انوان منفعت باشه من اگه بدهی داشته باشم این منفعت نیست ولیه که مال ذاتش باشه بدهی من چه رفتی به این سود من داره من باید خمس رو بدم خیلی از مساقی مونده در واضحات از احنام اخلافه و اون اختلاف رو بخوایم حلش کنیم راهی این یک راه نداره همه راه ها رو رفتن شهست سال محفظ نایدی تلاشش برای همین بوده یعنی مشکلات حل بشه منتها باز باقیه حل نشده لذا در جزنهایی گذشته بحث منتهی شد به اینکه در موارد که در مکلف هایی ما مکنده به این قصد هستیم یا نیستیم خیلی از موارد دیگه شک در مکلف و ذات مکلف برمیگرده به شک در تکلیف تا مجرای برائت باشه یا برمیگرده به شک در مکلف هم تا مجرای احتیاط باشه چی بگیم اختلاف اعظام ادا افعال ثلاثه مشهور قائلا به اینکه شک در مکلف برمیگرده به شک در تکلیف مخالفین مشهور اقوالی دارن قول دوم محقق اردبیدی و سیدی ازی اینا ها به اینکه که برمیگرده شک در ذات مکلف به مکلف یعنی میشه مزیرای هر دو باید برن بست کنن الان تجمعه قائلت و برهان رو نگاه خونه قائل به وجوب بست بر هر دو هم. قول سهم تفسیلند قول سوم تفسیل تفسیل دارای سه قوله خودش اونهایی که قائل به تفسیلند به یک نظر سه قوله به یک نظر شش قوله ولی الان ما سه تا رو میگیم یعنی قول اول و قول مشهور میشه همیشه که در ذاتم کلا مشک کردیم من نمیدونم این تکلیف علی خاطر اجازه هم امر ماعروف یا نه برای اجازه می در و آن و سید یزدی در حاشیه و در داره داره نقال به احتیاطاً من باید انجام بدم قول سوم قول به تفصیلیات در مقام تفسیل اول تفسیل نایینی تفسیل دوم تفسیل شعی تفسیل سوم تفصیل بعضی از اساطیید ماست بعد این سه تا تفصیل رو بررسی کنیم معلوم میشه که هیچ کدامش منتجه یک نتیجه ای خوب فقی نیست یعنی هم زابطه ای که محقق ناینی نا آورده هم زابطه که شدی سرده آورده در رد ذابطه ناینی و هم زابطه که استاد ما در وقت این دو زابطه آورده یعنی هیچ کدامش مفید نیست یعنی مشکل حل نمیشه با اینا رضا یک ضابطه اثباتیه ای، فقهیه میخواد برای تمیز موارد اگه قاعده به تفصیلی اگه قاعده به تفصیلیستی مطلقا بگیم شکل در مکنم که چی بر میگرده که اون یه دیگه میشه و اون موقع فرقش به با مشهور و محق قرددیدی چیه اونم نیاز به بیان داره علاقه کل تقدیر مهم تشخیص مبانی و در مقامه مالا در مکلف شک شکل این وجود به مال کدومشه؟ مشهور میگن مال هیچ کدوم نیست سه دی دیگزی علل قاعده باید بگم مال هر دویه پس چرا در عربه فتوا میده به اینکه که به هیچ کدوم باز ناجب نیست؟ چون مبناهش مبنای معقی و تفسیراتی که در مقام هست در قول سب اینا رو باید یه اشراف اجمالی برات پیدا بشه تا اینکه معلوم بشه مسئلهتون چی بوده اگه خدای نکرده ما بدون ذهنیت اینا رو بشیم ما هیچ موقع فهمی نمیشیم ما اینا رو مطلب می‌خونیم اینجوری این مطلب می‌خونیم و بعدن کفایه رو می‌خونیم بعدا تو درس خارج می‌گیم می‌خونیم ما چی شده نمیده به ما یه قدرت بر تشفیذ ننداشون پیر میشه ذهن انسان ولی الان اگه بنای شما بر این باشه که مبنای خودتون رو کنید قابل تشخیص الان چون ذهن بکره الان می تشخیص بدیم ما چی بگیم؟ بگیم جنابت متقبیم بذات در این موارد ثابت نیست یا نه این حرف رو قبول نکنیم یه حرف دیگه بزنیم علاقه لطفی هزاران مسئله شبهش از این جهته که مکلف به این حکم کیه؟ کی مکندفه؟ و بعضی از موارد مشخصه مثلا عاقله مکلف به پرداخت دیگه است حال اومده عاقله نمود طرف فامیل نداره امو چیز نداره پسر امو نداره آقله در کار نیست کی باید بدین دیگه یه از معضلات ما قایل به سقوط دیگه بشیم بگیم حکومت باید بده یا خود شخص بده خوب اینا هم نباید حلش کنیم وقتی بدون ذهنیت ذهنی علیه نمی شادش کنه. ولی اگه با ذهنیت باشه ما میتونیم ده ها مثالی که داریم میشنویم تو ذهن حلاجی میشه. برای اگه چی باید بگیم؟ مگر عاقله در کار نبود اگه این دختر باکره پدر نداره و یت نداره. آیا یه پولدار یا موکول به مادر میشه. مکلف هست یا مکلف نیست یا رو باید تشخیص بدیم به این طور هم نیست که بگیم حکم واضحه اگه واضح بود که این همه اختلاف در همه اختلاف در خیلی از مسائلی که ما تصور میکنیم از واضحات اختلاف دارن این اختلافات رو از الان میشه همیش کرد شما یک مبنا اتخاذ میکنید اون مبنا هزاران مسئله رو برای شما حل میکن مثل یک حلیدی که نیست. اگه یک رمزی باشه مشکلند. ولی اگه اون رمز رو ما ندونیم. مثل اینکه یک کارتی باشه میلیاردها پول توش هست ولی ما رمزش رو نمی‌دونیم. فایده‌ای نداره. باید همشون به مرحله فعلیت در ماام برسه. یه طوری باشه ما آقای خورینا رو بلده به ما نمی‌خواد. آیت حفیزی نارو بلد بوده هی بیایمی نارو ما بدیم به درد ما نمیخوره بخوره هیچ خدا نیست که بانک ها پر پوله؟ چه درد من میخوره؟ خودم باید بلد باشم به تا در نوع درس هی میان روح میکشن به عوازم ما رو اونا اینطور بودن به چه درد ما میخوره. طلب ها باید بفهمن طلبه زنده جوان رو ما ول کنیم بشسبیم به اموات از عوازم ما باید پیدا کنیم نیاز به مقنا داره مقنایی که حلال مشکلات فرقی باشه در حیطه سماتات استعمالات بعد این یکی از راه ها بود اون راهی که برای تحقیق آوردیم در جزوه نوشتیم غیر از الان از بیرون گفتن اینو آقاییم پیش بکنم بکنن فرد نشد یعنی دوتا راه هست برای تشخیص یکی از راه ها رو برام از بیرون گفتیم با متنم یه راه جوبومی هم داره این رو هم از روزوهای صابر نوشته بودیم این رو میدیم حکمت آقایان بایان بشه همیشه که ایش هم نوشتم و اینها برای فرضا مطالبه فرضا که شهادت می تحقیل پس فرد یعنی برای روی که دوشنگه آقا اینجا رو مطالبه کنن. کنن تا پس فرد نشن. anno che non ho un motivo di ribadire che stavamo anche in passato non ci siamo mai addentrati ci mi dicesti non che تو که